و همه هفتوز است چند صفحه شد؟ تا حالا شیش صفحه هفتوز الان در رویه 432 هست زبست گرد کس رازم گه بردمید چونم شد که کس روی هامون ندید زبان که سواران و زخم سنان نبود هیچ پیدا رکیب از انان هوا گشت چون روی زنگی سیاه و کشته ندیدند بر دشت راه نگه کرد خاقان از آن پشت پیل، زمین دید دیل، برسان دریای نیل، دریایی هم میتونیم بگیم که مثلا فرزمان که رود نیل رو گفته دریا چون در زبان فارسی به رود دریا میگفتن. آمود دریا و سیر دریا هنوز این نام خودشون دارن. اما زمنن میشه گفت که یعنی از بس که گرد بلند شد و تیره شد مثل دریا اینگه. یکی نامداری لشکر بجست که گفتار ایران بداند درست این خیلی مهمه ببینید که چینی ها زبان ایرانی رو پهلوی رو می دونستن. پس معلوم شید که نیازی که اونا داشتن به دادستت و رفت آماد به این دو کشور اونا رو بادار کرده بود که زبان ایرانی رو بدونن و شایسته اینگرش هست که کوهندترین دستور زبان فارسی جهان در چین نوشته شده که ما در بنیاد نشبور رونمیشش شده. داریم یعنی چه چیز موجب شد که چینیان ناچار بشن دستور زبان فارسی بیاموزند اگر اونا نمیخواستن زبان فارسی رو صحبت بکنند. در سفرنامه ابن بطوته ابن بطوته شخص شگفتی بوده که حافظه غریبی داشته و پس از اینکه از این مسافراتی سی سالش برگشت اینا رو گفته و نوشتن و همه همش بیادش بود او میگه که ما از اینکه پولی در چین مثلا منال جسران منال هجر بعد که آن رو پول سنگین میخوندند یعنی شما نگاه کنید در چین یه پولی با سنگ ساخته شده و میگن پول سنگین یعنی پول سنگی این زبان فاسیست در چین و اون داستان که باز ابن برسوته میگه که امیرزاده چینی بر رو کشی نشسته بود و خونیوگران آواز شگفتی میخوندن و مرتباً امیرزاده در حالت فرو رفت بود و مرتباً از اونا تکرار رو نمیخواست و بیتی شگفت میخوند به این ترتیب که تا در نماز استاده هم گویی به مهرابندری به مهرابندری این شهر اصادیه صورتگر دیباوی چین رو صورت یاورم ببین یا صورتی برکش چنین یا ترک کن صورتگری خب من از این گفتار که پیش آمد نتیجه میگیرم که میبینید که از چین هندوستان که همه فارسی صورت میکردم، از این سود آسیای شرقی که حالا تقریبای ست ساله برخودش شخصیت جدید در حقیقت ساختگی ساخته نخستین دستگاه های چاپ فارسی در استانبول درست شد. نقصین روزنامه فارسی در استانبول ترم شد. سلاطین و عثمانی همه به فارسی شعر میگفتن شعرهای خیلی زیبا. و گفتار فارسی و گفتارشون هم اکنون 50% با فارسی آمیخته است. بعد تا یوگوسلاوی که ما یک دانشمندی داشتیم که من اکنون باید نامش بیادم بیاد، که او مسنوی رو تفسیر کرده 13 جلد در 13 جلد مسنوی رو تفسیر کرده به این ترتیب شما نگاه کنید که نخستین زبان بنومالی جهان زبان فارسی بوده خیلی چیز هست که زمانی که ما نیروی ارتشی نداشتیم یعنی بعد از اسلام بود و پادشاهان مغول و تیمور و اینها بر ما حکومت میکردن اما نیروی فرهنگ ما زبان فارسی رو کرد بینرمالی اما با دستیسه های استعمار و به ویژه انگلیس یک باره هندوستان رو زبان فارسی پاک کردند. و دستو دادن که هر فرد هندی باید زبان هندی و زبان انگلیسی و زبان ناهی خودش رو یاد بگیره بنابراین دیگه جا باقی نمود که کسی زبان فارسی سوار بکنه انبوه که در هندوستان همه که فارسی اون زمانی که اونا این کار کردن هندوستان دوستان ست میلیون نفر جمعیان داشت اکنون داره یک میلیارد جمعیت شده یک میلیار از جمعیت جهان میبایستی به فارسی سوا که انگلیس چی روینار گرفت در غرب هم که بینید که دیگه همطور شد دیگه در آسای سقیر همیطور تا بایراک اون شخصی که در چیز گفتم در یوگستاوی گفتم. مثلا بیرو تفسیر کرده بایراختار بوده بایراختار یعنی بیراختار نامشم باز فارسی بوده این زبان جا... نخستین زبان جهانی رو که به نیروی فرهنگ ایران و به, به نیروی در حقیقت سهل و آسان بودن و فنی بودن زبان فارسی در جهان پراکنده شده بود متاسفانه در قسمت ها شمال هم که روسیه اینا رو همه رو مجبور که با خط سرلیک بنویسن بنابراین موند حالا فقط سه کشور تاجیکستان و افغانستان و ایران که در اون فارسی صاد و یه زبان در حقیقت دوستان دریایی رو به نیروی تکنیک امروزی و با ترفند بر جهان مصوری کردند که هیچ پاسخوی نیازهای علمی جهان آینده نخواهد بود. اینو بعد معلوم خواهد شد. در حصول ما بدونیم که این زمانی که این جنگ رخ میده بیشتر از 420 سال پیشه. چون یکی از مقاطعی مقاطعی که ما پیدا کردیم که مرگی که خسرو باشه 420 سال پیش بوده و این قبل از مرگ که خسرو بوده. پس خود ما بگیریم 4300 سال پیش چین در چین زبان فارسی آموزش داده میشد. فرزندان ایران به خودتون ببالید، فرزندان ایران بلند شید، کمر همت ببندید. کاری بکنید که دوباره ایران جایگاه خود شد در پنه فرهند جا بهشزوم ولی میفهمید یکی نامداری زلشگر به جز که گفتها ایران بداند درست به دو گفت ما که گفتم رو اعصاب من چسبوش میه حالا قرار میشه صحبتو می‌گیره یه موسیبی بشه یا یه سرعتی بکنی چون متت زیادیام هست صحبت کرد خستم شد من یه سوال من خسته یعنی مونده که نشه مانده نشه من <تصفح> این تهمه کنم یکی نامداری لشکر بجوز که گفته اور ایران به درست به دو گفت رو پیش اون شیرمرد بگو که توندی ما کن تا نابرد که سیمست بی اوزو بینامو ننگ همان آشتی بهتر آیت ز جنگ. فرستاده آمد برای پیلتن زبان پر و گفتار و دل پرشکن دو گفت که این محتر رزم جوی چه رزمت سر آمد کنون به هزمجوی. مقصود این که خاغان چین گفته میتونیم که رزم پایان بدیم و آشتی کنیم پس به هزمجوی. نداری همان آزخاقان چین ذکار گذشته به دل هیچ کین چو او بازگردد تو زو بازگرد که اکنون سفه را سرآمد نبرد چون این داد پاسخ که پیلان و تاج به نزدیک من باید و تخت آج یعنی اینا بفرستین نزدیک من به تاراج ایران نهاده است روی چه باید کنون لابه و گفتگوی چه باید یعنی بایسته نیست چرا بایسته است که لابه و گفتگو؟ بازم این ها حسود است این ها همه حسود است سر از پای تشمن ندانست باز بیابان گرفتندو راخ دراز بخشید من پیامک ها رو پودتا کردم چون چندین صفحه پیامک مویده و با... اه... تا هر صفحه هم حدودان در روز پیامک هست من الان صفحه خیلی بکنم یه اه... یعنی حساب کنیم صفحه اول من صفحه چار یعنی یعنی پیمیان جدید بشه یعنی چهار جباره. تا مونده چهار تا مونده تا یک برسم من و حال عرض میکنم اه... در اکتای صفحه نمشته اسمم معنی اسمم رو میخوام بدونم رامین یعنی چه از لاهیجان من حالا اسم یکی از اقوامم بچه خواهرم رامین رامین یعنی چی رامین این همراه با رامش رام... با رامش شد باشین ده. هم خواهرزازی شما هم این رامین از لاهی شما درود بر شما استاد گرامی آیا گفتاری از متن پیوند های ایرانی بین زم و مرد در تاریخی شده؟ بله پیوند بین زن و مرد به این ترتیب بوده که از دختر میپرسدن که مثلا فرض خون که فرانگیس دخته مثلا بحران تو مثلا فرض خون که اردشیر پور بهداد را به همتنی همسری همروانی میپذیری سه بار ازش میپرسیدن می‌گن این نبات بره گلاب بیاره اون گل دیهونو هر سه بار باید با آوای بلند که بله ما ما اول نه گل میاره رفته گلاب بگیره هر سه بار باید دیگه بله هر سه بار باید با بلند بگه بله بعد همین رو از پسر می‌پرسیدن پسر هم که می‌گفتم گفتم بر متشاه‌نامن داشتیم در داستان شاهن بیارم در اجدبال سبار... که عروسی عروسی زاهر دو بله بله متو به این به این توضیح نبود دیگه ام. بعد وقت اون کسی که بند این بند رو میبست میگفت که من این دختر پوره دخت فلان پسر, پسر پور فلان رو هم تن هم سر هم روان اعلام میکنم با سلام خدمت و سایتوندی عجبی پرسید با سالود چه به است این نام روستای ما در اطراف ملایه است خب این یه سالور که یکی از اقوام قاجار و ترکمند بودن که یه فامیلی هم هستن که به نام سالور اون بذاریم کنار نام رو اگر بخوایم بگیریم خیلی خلاصه شده من نمیتونم الان درباره سالور داوری درست بکنم چون ایک بخش اقوارشو بگیریم سال بخش دورشو اور بگیریم میشه اور در زبانهای باستانی به منی شهر بوده و هم در شهر اور سومر بوده هم در اورامان وجود داره هم در اورمیه و خیلی جاهای دیگه اور به معنی جایگاه و شهره ولی سال چی هست این رو من فعلا آوری نمی کنم با درود گوشتاد فرزانه آی دکتر شهر روز به چه معناست و ریشی آن در چه است. شاد بزید و رفسون با سپاس سفراغان مریم از دسفول درود بر مریم و دسول. شهروز معلوم دیگه شاه روزگار بله. بعد آه این گاو با درود به نظر با درود فرامن به نظر شما گاو گاو یعنی اسم گاو پارسی ریشه کلمه کاو مشابه کاو انگلیسی با تلفظ کاو نیست فیروز باشید چرا مشابه نیست اونها از این از ایرانی گرفتند. خود واجه گاو از ریشه گی عوستهی یفته شد. یعنی جان. که واژه گیان هم به معنی جان در زبان پهلوی و در کردستان مروض به جان میگن گیان. مثلا به محبوب خودشون میگن عزیز گیان. گیان هکم. هنوز در کردستان گیان گفته میشه. و گاو با داشتن ریشه جان یک برقب نام ایرانیست. انگلیسی هم که مهاجرات کردن رو خودشون گرفت. بله. دکتر جونهیدی ترافیک به فارسی می شود عبور و مرور ترافیک رو... به فارسی ب... بگیم رابندون خیلی بهتر میشه. بله. ترا... ترافیک سنگین بود بگیم رابندون بود رابندون بود عبور و مرور که عربی که فارسی نیست که ب... ب... یه هم اومده میان سلام چرا نگوین شاهنامه آخرش خوش هست اینو دشمنان ایران میگن. هیچ چنین چیزی نیست و متاسرم یکی از نویشندگان که بسیار هم حقوق گرفته از دولت و دستگاه و کتابهای زیادی هم نوشته که در همه جا خواننده رو به استعزای گرفته اونم از این استفاده کرده چنین نیست شانام آخرش خوش نیست ما شکست خوردیم کجاش خوشه اما ملتی سرفرازه که از شکست راه پیروزی آیندر رو برک بکنه درفش این پیروزی آیندر فردوسی به دست گرفت فرزندان فردوسی دنبال این درف شرکت کنن مسلما آینده درخشان از آن خب ادامه داستان شا. سر از پای دشمن دان باز که بیابان گرفتن تا راه دراز. نگه کرد پیران بدان کارزار چنان تز برگشتن روزگارگوثار کردن درفش در سیاه درفش در افاسی ها سیاه بود. نگونسار کرد پنهان کرد که برتن پوان به بیراه و راه شنین گفت رستن به ایرانیان که اکنون به باید گشادن میان. قمو و کام و دل بیگمان بگذرد زمانه دم ما همی بشمرد. روزگار و زمانه نفس ما یکی که تا به پایان برسه سپاس از جهاندار پیروزگر که از او مردی و بخت و هنر. من بیاورد و جام نخستیم در شاه جهان؟ بورد نام نه هر چیزی تمام الان رویه چندی مایید چیزی من برسم به خودی شوهنامه شما اسفار کرد 448 400 ما شروع کردیم صفحه 413 شروع کردیم رویه 413 رو الان رویه 448 آگاهی یافتن افراسیاب از کار لشکر. پس آگاهی آمد به افراسیاب که آتش بر آمد ز دریای آب. ز کاموس و منشور و چین شکستی نو آمد به توران زمین. از ایران یکی لشکر آمد به جنگ که شد چرخ گردنده را تنگ. ز گرب سواران نبود آفتاب چو بیدار در آمد به خواب سرانجام زان لشکر بیشمار سواری نموند از در کارزار یعنی شایستهٔ کارزار ازان رو پیران به راه خوتن بشد با یکی نامدار انجماند چون پیران اهل خوتن بود چون سیاب این این ها شنود دلش گشت پر درد و سر پر زدود همه موبدان و ردان را به خامز کار گذشته فرابان براند کزهران یکی لشکری جنگ جوی بدان نامداران نهاده است روی اون نامدارانی که در جنگ بودند مثل کاموس و مثل عشقبوس و مثل پیران و هومان و آغان چینو. برای اینی که میگه بدان نامداران. تز ایران یکی لشکری جنگ جوی بدان نامداران نهاده است روی. سپاه و گران چنان ساز آن لشکر بیکران. چه سازیم و این را چه درمان کنیم نشاید که این بردل آسان کنیم. همه یکسر از جای برخواستند. گران مایه گون پاسخ آراستند. زروستان چرا بیم داری همیه؟ چون این کام دشمن چه خاری همیه؟ ز مادر همه مرگ را زاده ایم یعنی برای مرگ زاده شده ایم. میان تا ببستیم، نقشا نه نفس تمام است. نگاه کن بدین لشکر نامدار جوانان چایسته کارزار ببینید این همه من برگ فرغ زدم تو این توبه بس به هم پیوستگی خودشو نشونده ده کوزه گفت بگید همه مرجو زدیم میان تا به بستیم نقشا دهیم نگاه کن بدین لشکر نامدار همون کسانی که دارن این سخنان رو میگن دنبال سخن اینجاست آخه چه کاری اینو کرد این کارو دیگه دستگاه محمودی این کار کرد تا ابیات ضعیف سست و وارد شاهنامه بکنه از ازش شاهنامه بخواهد و بعد که نمودار کنن که چنین نمویان کنن که فردوسی هم مثل بقیه اون شاعران سفله در گدا سفت برای پول این کار کرده این کار کردن دیگه صرف خزینه کردن سرف مختیر شاهنامه می نوشتن خودش خوده چیدی می نوشتن بسی خوده شاهنامه فیدوسی مخ... ناستوده محمود بیارن می نام نام محمود. در شانمه ما بیاد قرار کردن نفس دودند نگه به این لشکر نامدار جوانان شایسته کارزارز بحر برو و, و پیوند خیش زن و کودک خرد و فرزند خیش همه سر به سر هم دهیم از آن به که کشور به دشمندهیم چوبش نید افراسی و این سخون فراموش کردن نبرده که هن. چون این داد پاسخ که من ساز جنگ به پیش آورم چون شبد کار تنگ نمانم که که خسته و از تخت خیش شود شاد و پدرام از بخت خیش پدرامم یعنی پدرام یعنی برامش بود یعنی همون در رامیله سر زابوری را به روز نبرد به چنگ درازم در آرام بگرد چنگ یکی از آلات جنگ بوده که این فقط دو بار در شاهنامه از اشیاد شده یکی اینجاست که مثل چنگک بوده که الان چنگک ماهی گیری هم از همون نام برمده که کوچیک هست کچیکتره ولی این بزرگتر بوده مینداختن به گردن دشمن به اون رو به طرف خودشون برای اون سرکشان آفرین خواندند سرفراز رو را سولی کین خواهمدن یعنی تشویقش کردن که بریم به کینه به جنگ بدون شیده گفته خربمنشا شیده پسر نشونده که اینجا هنوز انجامان معیستان تورانت به پایان نرسیده ولی البته چند تقریبا در حدود شست رج اضافه اینجا اومده ولی اینجا سخن به اون پیبسته است به دروشیده گفته خیرد من شا انوشه بوی تا بود تاجگاه ترا فر و برزست و مردانگی نژاد و دل و بخت و فرزانگی نباید تو را پند آموزگار یعنی بایسته نیست که اموزگار به تو پند بده. نگه کن به دینگردشی روزگار. تو برباد این جنگ کشتی مران. چودانی که آمد سپاهی گران. خود کشتی خودت رو با این باد مران. که خب البته این باد تو رو راهنمون میشه به سویی که با شکست بروه است. بعد از اینکه که مخالفت خودشو با جنگ اعلام کرد. به دو گفت پیران که ما روز جنگ چه چاره است؟ از جستن نام و ننگ پاسخ چنین یافت افراسی گرفتند گرفتن دارن کین جستن شتاب رسول جان دیدم خان بگم مانده نباشید. در ما ده نباشید. چون شد... منم تو همینجا چون خیلی زیاد هستشیم فهمیدم که اگر اجازه می فرمایید تا همینجا داستان رو داشته باشیم رسیدیم به کجا؟ به آمادگی تورانیان برای نبرد. آمادگی تورونیان برای نبرد که در هفته آینده ادامه داستان رو خواهیم داشت. اگر اجازه بفرمایید من یک بار اعلام تلفن ها رو ببخشید. انقدر قرض داستان بودیم و مطالبی که آی دکتر استاد جوندی میفرمایند دیگه ببخشید دو 485 خیلی هم هشتاد و پنج خیلی ببخشید دو و ۲ 588 چهارصد هشت و پنج دوست و بیست، و هشتاد و هشت و و هشت شماره پیامک که پنج این پیامک من یه بار گفتم اون پیامه که شما سته معلومش شما می نویسید دو میگیید نمی هم دیگه زنگ می تلفن برنامه رو میدید برامک برنامه رو میدید سی هزار پنجصد و پنجاه و هشت و تلفن های زیادی که از شما اومده و الان باید پخش بشه مط نخست بدید من در مورد پیامک کابه بگم خدمتون با سلام ضمن خسته نباشید خواستم بگم تو دانشکده ادبیات صنداش اکثر دانشجوها و استادها، استادان شنونده و طرفدار برنامه زیبای استاد جنیدی هستند با تشکر رود به کردستان، رود به سنه و جوانان بیدادل کرد که به راه نیاکان خردمندشون و نیای بزرگشون گودرز کشفاتگان برای جانسپاری در راه ایران آماده بشند یه پنیمه <متصف> دیگه میخونم <متصف> که اینم شرخه حال هستش حس خود من هست حس همه شنوانده حال همه شنوانده هستش سلام جعفری هستم ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر جنیدی و آقای هدایتی نمیدانم چطور چطور شده هر وقت برنامه شما رو گوش میدم تمام مشکلات یادم میره خستگی هم رو فراموش میکنم شاد و شاداب میشم از بابت برنامه شما که مثل تلاست این برنامه تلابات از وقت تخش این برنامه تلابات اینجوری نوشتن یعنی برنامه خب قوبه قشنگ به همدازه خودشون بله اولی تلفن رو می شنید. ما تیاتر جاده چالوس بابام به برادر بزرگترش که ه سالشه میگه گگا معنی اینو میخوام بدونم و خواهر بزرگترم بهش میگن ددا معنی کلی میخوام بدونم یک دو بی که به جناب جنیدی به من تیایی هستم هنوز منتظر شما حالال موفق باشید خدا پشت فناتون خدا خ کار دوستون جنگل زارم زیبا اموزوارم. دقت بیشتر این ودیه خداوندی رو که میلیون سال هست که به ما اعتاک کرده بیشتر بتونیم نگهداریم. این قادر بی مسئولیتی نداشته باشیم که جنگل های ما از همه سو آتیش بگیره که جان ایرانیان رو آتیش میزنه. دیگه همون کجای نشابوریه همون کاکای شیرازیه همون اقای تاجیکی یعنی برادر بزرگ اما شما خیلی آرام صدرت کردید اون نام که برای, برای بانو میگفتن من اون نشنیدم نتوانستم تشخیص بودم که چی میگید ولی گگاه همون برقیقت کاکا یا گگه هست بله پرسیدن که بله در با سلام و درود فراغان خدمت استاد جنزی لطفا توضیحاتی در باره جز به جوز لباس ایرانیان بفرمایید. خیلی سختی یک بخشی شما صحبت کردی در برنامه های بزشته. من یادم از اگر کوتاه بفرماییم. حالا من سر میگم کتاه تر بگم. من کمترین شاهنامه دوست هستم فسیحی. اولا اینا رو با به شرح کامل در پیشکفتار بر ویرایش شاهنامه فسیحی من آوردم و کاربردش همه رو گفتم میتونن اونو بخونن. با این حال خود بوده و بعد پشت یک در کلاهاخودقیق با زنجیر بافته بوده که گردن رو حفظ می بهش گفتم گبر و بعد خفتان بوده و زرهی ای بوده که روتن می پوشیدن و بعد از اون شلوار بوده که تا زانو می بده و در سر زانو یک سپرمانندی بوده که این اگر از اسب بخورن زمین اون برای غزارشون رو حفظ بکنه و صاق بند برای اصلا برگرسبان بوده و گاهگاه گاه روی کلاه خودم یک قض یک حائل دیگه میذاشتم که این اتمالا تیر و اینها پیش خورده نشه اما شهر مفصل رو میتونید در پیشکفتار من بر وییرای شانامی فرروسی بخونید و ببینید آبی میل کنیم تلفن بعدی رو نشتبیم خب خانمان بیزم بسکی سیبتکتون گرفته بود درود بر شما استاد جنیدی این بید از شاهنامه است به شهر کجاران به دریای پارس که گوید زبالا و پهنه های پارس این شعر از شاهنامه نیست برای که پایان نبره میبینید چیزی رو نشون نمیده نه از شاهنامه نیست اطمالا از افسودها باشه با سلام به استاد لطفا در مورد روز اسفندگان توضیح دهید روز اسفندگان روز بزرگداش زن و زمین هست چون زمین مادر همه باشندگان جهان هست از این روز زن هم مانند زمین مادر همه انسان ها هست و اعترام واجب روز اسفند یعنی روز پنجام هر ماه رو که اسفند در ماه اسفند میشه اسفند و اسفندگان. اون رو باید جشن گرفت برای بزرگ داشت مادر و خواهران در خانه و پسران باید کار بکنند و خدمت بکنند. و مرد خانه همچنین ما تنها مردمی هستیم که یادگار دوران پش پشکو و زیبای مادر سالاری رو که با نام فرانک در شانم ازش یاد شده به خاطر داریم و درود به اون مادران که برترین داده های فرهنگ و دانش جهانی رو اونها در زمان مادر سالاری ما به دست آوردیم و فراموش نمی‌کنیم مهر مادر رو و مهر زن و دختران رو و جشن اسفندمازگرد به خاطر اینه. این درود بر همه باور فرمایید. من به خاطر برنامه و وجود نازنین استاد جنیدی قید مهمونی رفتن و امشب زدم. این آقا ماشاءالله فضل از گوهتک لورستان، آقا سوتک. ما برنامه‌ای استروده... درود به لورستان مهمان فردوسی باشیم، مهمان خان گسترده نیاکان باشیم. شاد باشید از سوال در مورد واژه سام که ما سام نریمان رو داریم و سام پسر نوح رو هم داریم که الان سامی نجات ها به اینها ها میبیند ساموسا در مورد این توضیحاتی در مورد کلمه اردوان یا ارد که امروز ما یک کشوری به نام اردن داریم خواستم ببینم همخانی با اردوان یا ارد دار این کشور اردن یا نه حکمال تشکر شاد باشید دیگران رو هم شاد کنید با که هم از اسلام شر. بر شما اردوان از جیشه ارتا پهلوی یعنی پاکی راستی و از جیشه کوهندتر اشهای عوستویی که همون معنی پاکی راستی هست بر اومده و اردوان یعنی کسی که پاکی راستی رو میپاید و سام هم در داستان ما سام نریمان بدلگ پهلوانان جهان بوده با اون سامی که در مطونه سامه اومده یکی نیست یکانه نیست من اینا رو در داستان ایران چکافتم ولی اکنون نمیتونم بگم که سام و هام و یاف یافت که در اون داده های تازی اومده چه کسانی هستند یعنی چه گروه های هستن امید میبندیم به این که کتاب داستان ایران به دستتون برسته شاد باشید پیروز باشید سلام خداوند به شما و استاد جنیدی پیروزی و بهروزی حدیه کنات تلغوسی اصلا با محمود قذنوی هم اصلا نبوده است چرا خیرخواه ایران زمین در بیان این دروغ بزرگ کاری کارستان نمی‌کنن تا دست کم از کتاب‌های مدرسه ها شروع بشه تا نسل‌های بعدی درس بخوانند و بفهمند این کار کارستان به یاری خداوند انجام شد من سی سال کار کردم و اثبات کردم چنین نیست این دروغ بزرگ تاریخ است دیگه این بر ای اون کسانی است که کتاب برای بچه‌های ایران می‌نویسن درک بکنن بفهمن این کار رو بررسی کنن بر بنیاد این کار جدید از فیدوسی شیر بیارن برای فرزندان ایرون سوالی داشته ازم یه معانی آتوزا خشایار دار بود به چه معنیه؟ بدرود شاد زویده آتوسا درود بر شما آتوسا درقدر یونانی شده یه اوستایی عوستاییست یعنی توسنیک هوتوس در پحله شد هوتوس و بعد یونانی ها اون رو به صورت یونانی آتوسا بردن هوتوس زن که گشتاشا خشایار که یعنی یار او باشه پادشاهی, پادشاهی خوب داربود یک نام تازه است که در متون ما پیشین ازش نداریم. شاد باشید. من جروری هستم نقلم راننده پامیون الان که دارم با سماغ میگیرم هستم نمیدونم که شده من همیشه از سنواندگان برای پاکورت بردامه هستم واقعا لذت میبرم واقعا جاز میشم جاز میشم وقتی که ای بردامه را بیش نکنه ما در منطقه نجفا باد به گوشه دیوار میگیم سکولی به خود دیوار هم میگن چینه به خواستان این ریشه های عوستایی داره اگه توضیح بدم ممنون میشه با تشکر دقیقان هستم از نجفا باد اسفحان بر شما سکولی نیست گوشه خود دیوارم هم یعنی دیوار رو, رو هم دیگه میچینن دیگه این خشدار رو هم میچینن میاد بالا دیوار چینهی در جاهای دیگه میگن و اون راننده هم درود به شما من شاید چنده باشید که نیم ساعت پیش یاد شما رو کردم امیدوارم جاده های ایران زیر چرخ های ماشین شما هموار باشن و شما آسمان ایران رو همیشه ببینید و در کوهستان های ایران رهنوردی بکنید برای ایرانیان. دکتر فریدون جنیدی کلمه دریال یا خلیج فارس رو ایشون خلیج من پیشنهاد میکنم من جای خوندم توی مجله اینا به نام شاهخا به شاه خا شین خ ب اینو میشه بفهمید این یا نه روزنامه امورداد هفتهنامه امورداد هستیشون ایشون بگید که ما در جریان هستیم خدا نگه در صورتی شما من اون گفتار رو دیدم شاخاب درست نیست شاخاب اصلا پیشینه نداره در زبان فارسی و مایه دریایی به این عظمت رو بی... به صورتی شاخه در بیاریم درست نیست در متون کهن هم در اوستا و هم در پهلوی از اینجا به نام دریای یاد شده و شایسته که ما بگیم دریای پارس کما اینکه همه هم بتونن ما در جنوب میگن دریای پارس خب پیامک ها رو حالا میخونم ببخشید خیلی از پیامک ها مانده. یه سوال که به خیلی کلی آیه دکتر جانیدی پرسند چرا ایلان و توران با هم می جنگ ما, ما قبلا گفتم که توران یک گرمای خیلی شدیدی رخ داد و تورانیان و سلمیان اروپایان جدا شدن بعد به یاد کشور نقصیجون افتادن و می که بیان تصاحب کنن خواهی نخواهی اینقدر جنگ رخ می داد دیگه درمانده نباشید سپاسگزارم از شما البته زمان داریم. منتها پیامک هم هست ترسه میمکاری طول بکشید شما سزم... میتونید بگیرید چند تا پیامک هم که اومده؟ این الان ما از ازده بدید به پایان؟ بله بله به بل بل پایان شما خوباره شدیدید الان از شش صفحه هفت صفحه پیامک هر هفت صفحه چند تا؟ هفت صفحه بعد بشمارم آقایی تقریبا گفتن سفیتیتم میگن سفیتیس باشه گفت خب دیدو ده نفر درود و پیام و خرام من به این تیفیس ده نفری که برای ما پیام دادن و ما نمیتونیم پاسخ بدیم همچنین برای کسانی که جا برای تلفنشون نداریم شاد زیوید و خرم باشید خیلی از این کسانی که پیامک دادن در مورد آب و هوای منطقه گفتن جای ما رو خالی کردن گرم... صحبت از گرمای برنامه ما کردن و گفتاره فردوسی و صحبت‌های شما کردن که ممنونیم از همه اون عزیزان خیلی ها پیامک دادن چطور می‌تونم با بنیاد نشابور ارتباط برقرار کنم ارزم می‌کنم با این تلفن و شاهنامه رو در مورد شاهنامه خواستم بدونن چطور میتونن تهیه کنن ارزم می‌کنم حضورتون 828 96 27 84 828 96 27 84 این شماره تلفن بنیاد نیشابور هست شما میتونید اونجا تهییه بفرمایید ممنون باشید سپاسگزارم از شما باربنا بشید پتروت شاد باشید ایرانیان کننده برنامه آقای محمد رضا هاشمی الهیدری صدا برادرو آقای علی طاهری و آقای نورالله الهیدری هماهنگی پخش آقای کاظم میرواسمی و آقای مهدی ابراهیمی هماهنگی برنامه بر ارتباطات آقای سهراب ستایشمنش عزیز و آقای ابو عزیز منم حمید هدایتی را سپاس گذارم از شما. شب شما خوش ایرانیان.